یک دوسر بیدر چسبیده و بعد از مدتی دیده شده حق و نمازار, و نمازار باید زوال بخواه باید درست عمل کنید مانعی رسیدن آب اپلوز شده اگر یک سرسوزن هم خوش مانعی وضع شما کامل نیست حدیثی هست که صحابه کرام اپلوزی از جهادی برمیگشتن گرشتن سری سری وضع کردن پاشن پاک خوش بود نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمودن که ویلن لیل آق اون پاشنهایی که خوشکن اینها دیگه جهنمی هی. این همین کار باعث جهنمی شدن شما میشه اوزو نشده نماز درست نیست نماز درست نشده باشه که انسان میره جهنم قضی چست بار باید مواد داخل بازار هست اینها رو بگیری و انجام کار اونها رو بر بدارید یا دستکش استفاده کنی دستکش های کارها کارها هم با دستکش نمیشن دستکش باشن که فلاسیکی باش اگر دستگیش های پوسی و آشو کار زرافتکار نمی گذاره پیار حال باید با مواد دیگر که اینها برمیدارن از دنها استفاده کنید